حکایت پارسایی بر یکی از خداوندان نعمت گذر کرد که بنده ای را دست و پای اوستوار بسته عقوبت همی کرد گفت ای پسر همچو تو مخلوقی را خدای عزوجل اسیر حکم تو گردانیده است و تو را بر وی فزیدت داد شکر نعمت باری تعالی بجایار و چندین جفا بر وی پسند نباید که فردای قیامت به از تو باشد و شرم ساری بری بر بنده مگیر خشم بسیار جورش مکن و دلش میازار او را تو به ده درم خریدی آخر نبه قدرت آفریدی این حکم قرور و خشم تا چند هست از تو بزرگتر خداوند ای خاجی که ارسلان و آغوش فرمانده خود مکن فراموش در خبر است از خاجی آدم صلی الله علیه و آله و سلم که گفت بزرگترین حسرتی روز قیامت آن بود که یکی بنده صالح را به بهشت برند و خاجه فاسق را به دوزخ غلامی که تو خدمت توست، خشم بیهدمران و تیر مگیر که فضیحت بود به روز شمار بند آزاد و خاجه در زنجی